اللّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى قبل از این وارد بحث حقوقیت خبر، و در میان طلامای شیعه. بعد از مرحوم علامه که ایشون بحث حجیت رو به این صورت مفرح فرموندن به عکس ایشان علمای اخباری خیلی موضع شدیدی در این جهت گرفتن و کلمات علمای اخباری ممکن است مرادشون حجیت که ظاهر بردی عبادشون است که در کتب اقبعه یا مطلقا در کتب مشهوره هست که انشالله در بخش روایات این روایات رو میخونی و ناکن در مقابل او از عبارت عده از اونها معلوم میشه که بحث حجیت نیست بحث قطعیت صدور و ثبوته که یک مقداری مشکل ما هم به حقیقت با اون یا این بود یعنی این مقداری که ما کلمات مرحوم شیخ خورون رو کردیم این عدم تفکیه که اینها بین حجیت و بین ثبوت که این خودش یک مشکلی است یعنی باید این مشکل حل بشه یه دفعه اال میگه حجیت روایاتی که در کتب مشهور است یه دفه نه ادعا میکنه که اینها ثابت هم و قطعی هم و جایی بحث ندارند لزا از برای برای اینکه قبل از ورود وارد بحث بشیم این دعوا که از قرن دهم و در میان علمای شیعه پیدا شد این روی بررسی را او انجام بدیم بعد وارد اون بحث است بشیم اجمالش از کردیم که بحث حجیل که خصوص مثلا خبر صحیح که جمعیه رواتش فره باشند در فره ما در روایی در ما از زمان علامه از قرن هشوم مفرحی به این صورت در میان قدمای ما تا حدی مضموشه هر اولیه رو داده اما با اون گرفت و ذرافتی که برقه علامه انجام داده هر و صحبت شد که مطلب الله قد مهدت الله و, الله و با واقعیت های و حدیث ما نمی و طبیعی هم بود چون این مطلب معیار در قرن آمد و خب در حدود تنج قرن قدمای ما تدوین فقر و حدیث و روایت که همده تدوین حتی اصول شده بود این نمی یک معیاری که در قرن هشتون بیاد برای مسادر ما که در قرن به بعده یا دوم به بعده بخواد کارساز باشه این روشن بود مطلب به نظر و یکی از نکاتی که در کلمات و اخباری ها بود یه منظر شده بینیم بود که این معیار علامه کافی نیست راست این مطلب اینا سا بسید یه موقع صبود بکنیم اصلا احتیاج به استدلال هم نداره اصلا تصورش کافیه احتیاج به تصدیقش دلیل خاص نمیخواد این که ما یک معیار رو در قرن هشتون بیاریم. در کاری که پنج قرن اول ما انجام دادن و گذشت خب این کار درستی نیست اینطوری واضحه یعنی به نظر ما تصورش یک در اساسی ایرادش بقول خصوص جزء لازای است. تصورش کافیه این به نظر ما لکن علایم حالن اثر کردیم بعد از علامه برخورد های متعددی در این جهت این برخورد معروف همون که گفتن جاده و کاسه رو بحثی که یه وقت بالم آنه ها کردن که تون رفتن و ادهشون قایل به حجیت روایات کتب اول ادهشون حجیت روایات کتب مشهوره غیر از کتب اربعه این حالا اینو رو میشه ای کاری کردن دلیل روشن نداره اینشالا عرض می کنم و که از اون در عبارات صاحب وسائل خوندیم بحث ثبوت و قطعیت اینها این خیلی این مشکل شد اونی که ما با آن مشکل داریم که اینها ثابتن ثابت هم بحث به وجیهت هم یا آها ایشان یا اینا فرق بین وجیهت را ثبوت نگذاشتن واقعا نتمانستن فرقبین تابقی دارن یا واقعا محتقیل این اینا بالاتر از وجیهت هم ثابت هم هم نذاره و کتب مشکل را واقع ما در اینجور این کلمات مقموم شیخ خود و در اون خودمون که رو میکنیم عبارات افراد رو بکنیم متعرض شد ششم از در خاتمه وسائل ایشون دوازده فائده که خب واقعا فوائد لطیفی هست زحمت خوبه و مرحوم حاجی نوری قدس الله سره مثل ایشان دوازده پایده آوردن رو بعد از فواید ایشان رو حاجی نوری با هم مونزع کرده خودش هم یک دوست فایده اضافه کرده مجموعش 12 تا است اما 12 تای ایشان یک جزء تمد تای کتاب نیست مستدرک اما این بحثا هم داره ایشان و اون بحث مستدرک الان نظرین وارد اون بحث نمیشه اصلا این راجع به فایده ششم که ما خوندیم فایده هفتم در ایشان این در این کتابی که چاپ جدید شده این جلد سی نوشته الفایل از سابعه از توصیقات این توصیقات الامن همه همچنان که بین پراتز بوده است مال ناشر کتابی ما این چاپ کتابه مال خودیشان نیست اینشون توصیقات الامن ندارن توصیقات الامن اصطلاحا الان در کتب رجالی ما مثل فسق معجمه آقای قوی اونجاییست که ما از درز از عبارات تو ما رو میفهمیم اختیار اختصاصی به خاص نداره. این اصطلاح توصیقات عامه میگن که توصیقات عامه مثل توصیقات خاصه است دیگه چه فرقی می‌کنه. یه دفعه میگه ضراره بود سه گازل میگه آلمای قانن 50 سرا. فهمون کنه یکی توصیقات عامه و توسیقات خاصه هم. البته نکتهش اینه که مثل ما واقعاً چون خبر ثقه و حجه می‌دونن توصیقات رو از جهت و صاحب وسائل اصلا خبر سقیل حجت نمیدونه دنبال حجت خبر سقیلی صاحب وسائل و اصولا مراد ایشنان توصیقات میزدن چه چطور شده این در این چاپ کتاب این کلمه رو اضافه کردن توصیقات عامه ولی بله. شاید حواسش نبوده و هر حال مراد صاحب وسائل قرائن است نه توصیقات آمنه یعنی صاحب وسائل در این فایده شیخ هفتون یک قرائن عمومی عورده که قرائنی که به نحر عموم دلالت میکنه برخجیت عددی از روایات مثلا گفته زراره کتاب صحیحه پس هرچی از زراره صحیحه یا کتاب حسین سعید معتبره توصیقات آمه مرادشون توصیق نیست قرائن آمه ایشون در این فائده هفته قرائن آمه رو در فائده هشته که اونم انشاءالله براداری بخونیم قرائن رو به تفصیل اوبردن یعنی قرائن آمنه رو توضیح دادن شباهدی لذا ایشون فائده هشتون رو فی تفصیل بعد قرائن التی تختران رو به خبر وقت ایشون رو برداشتن اوبردن در این جایی که اوبردن خوبه مرحال میخوایم چون فائدلتی ما یه میدیم انزمان بر قرائن ایشون ذکر کردن تقریبا حدود 20 20 20 خرده ترینه است که ایشان در این مقدمه قاعده هشتم به اضطراب ذکر کرده. این مقدارم در به اصطلاح ادله بر کل روایات که حدود 20 تقریبا دلیلم در اون خواوده. پس در قاعده هفتم ایشون قرائن عامه، توقیفات عامه خود ایشون هم داره فیزیک را اصحاب الاجما من فکر میکنم چون الان در کتوب رجالی ما وقتی مثلا معجم آقاکوی بحث توصیقات آمه میکنه کلمه اصحاب اجما آمده یکی از توصیقات آمه را اصحاب اجما شاید این آقا تصور کرده ایشون میخواهیم دنباله بله چیز هستن هیچ میگه در ذکر اصحاب اجماع و امثالهم و جماعتی الذي بسط و عليهم السلام و اشن و علیهم زللی فیحصلو ایشون عمدشینه ما افرادی رو ذکر میکنیم این افراد اگر جایی باشن خبرشون قابل قبوله دیگه نمیگه یه خبر واضحشون کل به وجود فی السند قرینشون توجه با ثبوت نقد بر وصول این مراد ما از قرار عامه اینه و یه شلو به وجود هم فس اگر از نام یکی از اینها در باشه، این خودش فرندش رو قبول بکنه ممکن ده تا سنت، دویست تا صد تا سنت، دویست تا در اون آقایی که نگه توسعات آمی کلمه اصحاب خواهش ما آرده خیال کردیشون شما توسعات آمی نه، ایشون میخواد تراوان رو بگه. تراوان آمیم یعنی مثلا اگر وجود در یک خبری بود، اون خبر قبوله. دیگه این میخواد دونه دونه حساب بکنی به طور رو کلی ممکن دیویست تا قبل بشه این معیارش در مقدمه هستون این عبارته معیارشون فیحسون رو به وجود همفستنن قرین از اون توجب و ثبوتن نردن من مخصوصا عبارات سابوسا اصحاب کتب رو میکنم، برای اینکه که بگم نقطه اشکال کجاست نقطه اشکال این کلمه ثبوتن نردن محل اشکال اگر به جای سبوتن نه توجه و حجیت الاخبار باز بهتر بود حجیت نگه سبوته باشن شد محل اشتال دریدن کجا این که ایشون یه توجه و سبوتن نه این محل اشتاله انصافا مجموعه قرارینه که ایشان آوردن اولا کافی نیست برای حجیت فضلا این سبوتن اگر برطرت هم برای حجیق کافی باشه قطعاً برای سبوت کافی نیست اگر برای حجیق و نیست برای حجیق کافی نیست فیالا ما انشاءالا عرض میکنیم و تک مه کلام هم روشن میشه بخش اخبار هم اینا به روایات هم کرده سوک اونجا انشاءالا توضیحاتش داده میشه وقتی ایچان ام... عباراتی بودن اول عبارت اه... کتاب کشی بودن به اسم اصحاب اجماع من از کردم سابقا تا این بحثان عبارت میز کتاب کشی آمده در همین اختصار شیف در همین اختصار چون این اختصار قبلش و بعدش و در هم الان موجود نیست پیش ما چی بوده حقیقت عبارت و عبارت رو من تالا سابقا خارجی میده چون خودشون هم آوردن اون محل شادل رو می‌خونیم. تا دعوای اجماع مشخور شده ادعای اجماع سه تاست لیکن غیر هم داره با سابقا توضیح هست کردم. در عنوان کتاب این تو تصمیح تا اصحاب عبی عبدالله علیه السلام شده هم توش باشه وقت بلافاظل اینشون نوشته قاب ماها زالده قال کشی این قال کشی که دار کشی هست حالا این راویه نسخه گفته شیخ توسی که کتاب رو کرده گفته شما ما این توضیح رو داریم مالا جاش اینجا نیست اینشالا بحث خاص به خودش که اصلا مدعی این اجماع کیه کی ادعای اجماع کرده از معفل اصحابه علا فسیه ماهر کیه مدعی اجماع کیه چون معلومات مدعی اجماع در اینجا خیلی معصره اگر مدعی اجماع کشی باشه که ظاهره عبارتی خود کشی خیلی مرد دقیق نیست کتابش کثیر الاخلاقه دور بوده از حوزه های علمیه توی مشایخ ایشون که حدود پنجه و خورده ایشون استاد دارن معظمشون اهلند کش و سمرقند و فاریاب و ماریا که نمیشناسیم یه چند تاشون که میشناسیم فقط منحصرا از راه شیخ میشناسیم شیخ طوسی که احتمالا شیخ از ماصول کتاب رجاله کشی گرفته فکر نمیکنم جل زاده گرفته باشه علایه حالا و ایشون از مشایف اونجا داره و یکیم از مشایف قوم یکی دو سا شاد بد نباشه نیشا بودم داره نشون میشه ایشون مسیر خط فکرش تا همین سمنغند و کشت و شهرهایی زدان مثلا هم یاداشت به افغانستان هستند و تو خراسان قدیم و تا قوم ایشون شوالدش ایشون نمیده مشایف بغداد و فرسون کوفه و اینها رو درد کرده باشه لذا خواهی نخواهی دعوای اجماعی این مقدار مشکل پیدا میکنه مضافاً دیگه که خود کتاب هم نشون میده کتاب قوی نیست ایشون رجالی قوی نیستن هم اطفال قوی ندارن اون مشکلات خود کتاب هم هست حالا در عبارتی که الان در اینجا داریم این یک دقت بکنید این سه تا عبارت هست. که به عنوان اجماع ذکر شده این سه تا عبارت من عنوانشو میخونم فر ا باارت اولین جایی که میاد اینه قال کشی تجمعدل حساب و تا حال تصویر ها الا اولین من اصاب عویجهفر و اوی عبدله عليه مسللم وقالو به لحم به فره و قالو و قال و حال اولین س ظراره به الخرین این یک باره عبارت دوم در اصحاب بعدی چیز میاد با غالب بن بعد داره بعد چند تخه داره که تصمیت عنوان باب تصمیت تسمیه الفقها من اصحاب ابی عبدالله در این جزیه قال الکشی نداره این این دو تاست اینجا داشت اینجا نداره اینجا فقط داره اجماع علی علا و الا تصحیح مایسته و انحاء اولاد و تصدیق حمد مایه قدوم نمیدونم دقیق فره بزرسا عباره در اون عباره اولی اجمعتل اصابت و علا تصدیق ها اولا همون تصدیق رو بوده. در عباره دومی غمی اجمعتل اصابت و علا تصحیح مایه صفحان ها اولا. و تصدیق حمد مایه قدوم و اغر رو لهم بلفرد لذا این مسئله مطرح شده که اینجا ای تصفیح مایه داره اونجا داره تصویر. لذا ما سابقا چند بار ارز کردیم احتمالات زیاد در از این عبارت داده شده مغزم احتمالات قحادی هستند. یعنی هسته عبارت یکی رو گیرستن بعضی احتمالات هست مراز ما, ما از احتمال سنایی مثلا عبارت اول غیر از عبارت دومه دو معنای عبارت اول با معنای عبارت دوم دو ترمی کنه این طور نیست که هر دوشون به یک معنا باشن دقیق می این بعد 6 نفر رو اس میبره و حالا ما باز وقتش پس دو تا فرق بین عبارت اول و دوم هست من الان باز بحث میشم میخوانم فنی رو عرض میکنم که بعد آن مراجعه کنم یکی که در عبارت اول قابل کشی بود تو این عبارت نیست یکی که عبارت اول فقط تصدیق ها اولا بود عبارت دوم تصحیح مایست خواهن ها اولا و تصدیقه یک چیزی اضافه داشت عبارت سوم تصمیت الفقه ها من اصحاب عبی هستن و اول حسن رضا از من اصحاب اونا الان تصحیح مایسته ها انها اولا این عبارت سه مثل دومه هم آلت تشیح نداره هم تصحیح داره و تصحیح هر دو با هم به رضا از کردم ادلی از علماء ما احتمالات سنایی دادن مثلا عبارت اول یک معنا داشته باشه عبارت دوم سوم معنیش پردو بکنه حالا الان آخر که من نمیخوام وارد بحث بشه وارد بحث این از خواب اجماع. این عبارتی که ایشان ده بعد ایشون میده ایشان حالا این استظهار ایشان فعول من منهاده الاحاد البته بعد ایشون گفته که در کتاب کشی هم رویات در مد این افراد هست خیلی فعول من منهاده الاحادیس شریفه مورد سر نه ای عبارت کشی روادی در تشکیل امه دین افاده بود. دخول المعصوم خیلی عجیبه آقای مرحوم استرابادی خیلی به شدت به اجماع حمله میکنه من تعجب میکردم که مرحوم شیخو سلامویش فرمودن اینا چرا که حواششون نبوده راستن اون مبنای اصولی ها که دعوای اجماع توش معصوم داخله ایشون از این راه اولا ایشون یه فعل به من منها دل احادیثی شیعه دخول المعصوم چون مساع اصحاب امام صادق از خود اجمعت اصحاب دیگه بل معصومین علیهم السلام که یاد الاجماع از شریف المنقول به خبرها در ثقه الجلیل و غیره دی توسطه پس هر اول ایشان چون اجماع کارش از قول امام معلوم میشه که معصوم بلکه معصومین هم در این اجماع داخلهن حالا المنقول به خبرها در ثقه الجلیل خود مردم کشیف رفت الا اینکه که از کردن مشایخ که نگاه رویم حدود پنجه تا ایشان استاد دارن معظم اینها رو نمیشنسی یه چند تاشون هم توسیخ شدن از یه در مشایخ و قالی و مالی نمون مهم کنیم استاد خوب ایشان مروم عیاشیه و الا معظم مشایخ ایشان زعیف هن. و بعدش هم نجاشی حق با نجاشی میگه کتاب بود و اقل نه نهو کسی رو این دو تا دو که خودمون معارجه بعدم خب اصلا مشکل کار اینه که ما هیچ گونه شاهدی از این اجماع در غیر این کتاب کشی فعلا نداریم دقت رو مثلا شهر توسی در قده بهش اشاره کرده من با مثال میخوام. خواهیم توصی توسی یا مثلا تو تحقیل استفسار بگه بله این خبر خیلی شریف شن از حاول اجماع مثلا و من از کردم این 12 نفر مجموعش بیش از 12 نفر بنابرای از سطح 6 باشه چون جابجا هم داره بعضی جا کرده بعضیش مثلا قال بعضا مکان حسن محو حسن علی اینو فضال بعضی ها فضالتونه قال بعضا مکان عثمانه نیست. با مجموع جا به جایی نفر هست 12 نفر بیشتره مشکلی که ما الان داریم نجاشی در هیچ خودم از ترجمه ها اشاره به این اجماع نمیکن دت کن ار کردم مرحوم نجاشی به این افراد سه مسلق داره یک عده فقط گفت ثقتن یک عده مثل عبداللهابن مغیره گفت سقتن ثغه یک عدهشونم مثل عبدالله ابن بکر اا نگفت مثل عبدالله ابن حتی لفظ ثغه هم نفته راجبو پس برخورد نجاشی با این افراد نه بخاطر و وقت وقتا این کتاب کشی در اختیاریشان بوده دیگه هیچ نوع و فعالی ما در کلمات و علمای خودمون راجع به این عبارت کشی نمیدونیم ایشون میگه فعال همه دخول المعصوم باها در اجماع شریف المنغول به خدر آراد سرمه این چیز اجماعی که هیچ بونه شاهدی از کلم خود کتاب کشی دور از حوزه های علمی ما نوشته شده یکی از عوامل کسات دخل کتا هم همینه دور نهاشه کده پردم ادهی از مشایخ ایشون مجاهیل و زعفا هستن لذا کتاب حالا خود استنصاف کتاب هست. نسخه غلق از کتاب به بغداد رسیده و شواهد ما نشون میده که شیف کتاب در ایام نجم که باید ایام بیحالی شش بوده ایشون کتاب در اونجا ترخیص کردن در بغداد دارنشون ترخیص ندر فهمن کتاب رو کتاب جز آثار علمی شیخ در نجفه که شیخ در نجف از آثار علمی این ده سال آخر اونشون نداشتن جز این کتاب و کتاب عمالی ما دیگه چیزی از آثار بله شیخ مقدار اجازاتش تو نجفه این منشه ای اشتباه شده فرد که این نشانت علمی در نجف بود اجازات نه تعالیف تعلیفات شیخ همه مال اونچه که شیخ تعریف کرده کل این آثار که واقعا یک داراتل معارف به اصطلاح علوم حوزوی ما الان شیخه دیگه در فقه داره در فقه تبیعی داره در فقه منصوص داره در رجال داره در حدیث داره در فهرست داره در کلام داره در تفسیر یعنی ما یه داراتل معارف یک کتابخانه است دیگه اصلا آثار شیخ در مجموعه معارف حوزوی ما یک کتابخانه است تمام اینها حدود 41 سال که ایشون در نجف بودن در نجف در بغداد بودن در بغداد تعدیف شده وقتی ایشون به نجف مشرف شدن دیگه ظاهرم خستن بودن حدود یازده سال ایشون نجف بودن هیچ اثر علمی ایشون نظرن الا همین تلخیصی از کتاب کشی و می نشستن جزوهایی از برداد با مثل حدثان ها کنان حدث می نوشن استرها امالی می نشستن چند تا جزوه می, خوندن می نوشن این کل آثاری که ما در, بق... در نجف از شیخ داریم بله یه مقدار اجازات شیخ در مجب صادر شده این درست یه مقدار اجازات میگم این مشتر شده ام بعضیشون تصور کنید شیخ نشات علمی در نجف <تصفيق> <تصفيق> نشاط نشات علمیشون نداشتن اجازات دار. پس این که ایشان بله بله حالا میشه همین چنین تفسیری که مشکل کار اینه که میشه گفت احتمال میشه داد ما الان راجع به این ترخیص هیچ چیزی نمیتونیم بگیم چون نسخه اصل موجود نیست شیخ هم یک اشاره بکنه که من چیکار کردم تفسیر کردم مثلا گفته شده چوش رجال عامه بوده اونا رو شیخ هست نه بدون اینکه گفته بذارن خودش و هر کسی ارزش چرا گفتن این چیزایی من نمیخوام بگم چون هیچ کدومش دقیق نداریم ما. از کردم اصلا این مقدمه این کتاب که شیخ اینو در نجف تلخیص کرده اصلا در نسخه مطبوع ما نیامده این مروهم میذنه تابوس یک نسخه رجالی کشی نقل میکنه. اصلا در نسخه رجالی کشی مطبوع ما این مقدمه که شیخ میگه من اینو در نجف نوشتم اصلا نیامده. لذا ما هم به اعتماد نقل ابن تابوتمون نشرفت دقیق نداریم. چه کار کرده شیخ نمیدونیم مثلا چی بوده کار شیخ به هر حال کتاب موضوع که خیلی غلط داره این که مسلمه آیا بیش از این بوده شیخ تمش کرده احتمالات از سرم. هر چی شما های احتمال داره این باب با... با... احتمال بازه اما دلیل نداره یعنی نکتهی ای که این که وم... یونکه بله یونکن یوار اما نکتهی نداره اگر این کتاب دلیل داره با... یا اینکه اون ما کلا تقریبا معاصر نه ای جزء مهم این کتابه چرا خوب هم فر... خوب داره هنوز نسبتای زیادی مال عیاشی سوشاست نسبتا سالم خوبه مثلا ما از کلمات ابن فضل پسر منحصر از این کتاب دارید از عیاشی نام این ما مشکل نداره خوبه ما الان راهی به نداریم به رجال ابن جز این کتاب شاید یکی دوم روی در نجاش خوبه جهات خوب داره نه اینکه که منحصه رو باشید از اما غلط قلود داره اینکه از این اجماع ما اگر قائل این اجماع رو کشی بدونیم خوب دقت بکنیم اگر من چون همون دیمونم قائل این اجماع کیه اگر قائل اجماع عیاشی باشه بیشتر ارزش داره اگر قائل اجماع کشی باشه عرضش کم داره چون ایاشی به بغداد رفته به کوفه رفته مشایخ زیادی رو درکرده ایاشی اگر بگه اجمع افل واقعا از علما حق میکنه. شیخ نه, نه. اینطور نیست اما سه از کردم در این عبارت در اولیش داره قال کشی این تو خود کتاب آمده همه قال کشی در اون دوتایش نیامده حالا چرا ایاشیست من چون نمیخواهم از این بحث بشن بحث طولانی بقید نکاتی رو عرض کردم حالا این نکتا رو اعرض بکنم تقریبا این مطلبی رو که مرحوم شیخ در این به اصطلاح مطالب فرموده بله اینشون به اصطلاح بین شیشتای اول و بین شیشتای دوم چون آقا نقل نکردم من رو اعرض میکنم بین شیشتای اول که هم خود بیم اشاره کردیم با شیشتای دوم یک عبارت رو به قالل عیاشی اون وقت راجع به واقفیه و که اینها فقه های اصحاب هستند دو مردمان بزرگی یه یعنی یعنی عبارتی از عیاشی داره اون عبارت هم شبیه به همین عبارت اصحاب اجماع این آهین ذکر نکردن در اینجا جامعشون نیابنده مرموم شیخ خود آهین مثلا آه خویی که در معجم و عبارت اون عبارت نیومده. اگر اون عبارت ظاهرش این که کلام مال عیاشیه احتمال این هست که این کلام مال عیاشیه اگر کلام مال عیاشی باشه به اون قررینه که ارز کردم شمولش برای علما خوبه اما اگر کلام مال کشی باشه اصلا شمولش برای علمایشیه شبهه داره چه؟ برسه به شمولش به احمده مثلا چیم که معصوم برای مأسومی داخلی ندیج باید اگر قائل کلام الان خب متعارف در ذهنه ها می همه میگن کلام, مال هم می کلام ماله کشی همه روز کشی نسبت میدن اگر کلام مال کشی خود کلام ارزش زعیبه خود این کلام ارزشش پایینه برای شمول علمات چه اصلا به شمول محسوم بعد ایشون داره وقت لکره نحو زالد بل ماهو و عبلغومن از شیخو فی کتاب الاده خیلی عجیب هم که اجماعی رو در اده نداره و جماعتون من المتقدمین و المتاخرین و زکر و انهم اجمو و علل عمل به مراسیل هاولا ها الاجلا و امصاله هن کما اجمعنا عمل به محقانی دهیم دیگه این دیگه خیلی کم لطفیز از مغموم صاحب و صاحب قدسالله حسابه چیزی که کسی ندفته چون که جماعتی گفتن که اصحاب ما اجموع علل عمل به مراسیل هم کما اجموع علل عمل به محقانی دهیم خیلی کم دیگه ما برای اقتران مرحوم شیخ خورت الله و دیگه این عبارتی که که این مطلب رو من ارز بکنم مرحوم شیخ در کتاب عده جای دیگه هم ما نداریم در مرحوم شیخ در کتاب عده به تا تعارض تا که پیدا میشه بله ایشون مرحوم شیخ این طور داره این عبارت در, س... در این کتاب در همین فایده هفته در صفحه دیگه سویه کرده. و اذا کان احد و راویهی مسندن و الاخرا مرسلن نوظرفی حال المرسل فا امکان من من یعلم انهو لا یرسل الا انصبت نوسوغن به فلا ترجیه لخبر غیره علا خبره اگر مرسل جزء اجلا باشه و عجل عجل داله که مگیزت طائفتو این از کلمه طائفه اجماع فهمیده مگیزت طائفتو بین ما یرویه محمد ابن ابي امیل و سخوان ابن يحيى و احمد ابن محمد ابن عبی ناس و غيرهم از کلمه غيرهم از آن اصحاب اجماع فهمیده زاید دیگه روشن ش... ین عباس شعررس روشن شد. راهاهرا از کلمه مظف تااعفه به اصطلاح اجاع فهمیده از کلمه غیر و ها از خواب اجاع رو لیبل بیشتر ذکتر شده چون شع وقی ریم و غیر رو من از سقات الذيین اور لا یربون و لا یور سلون الله مننیو سقابه، ایشون الوینو ارفو یعنی اون اجماع اجماع آقایم است. پس معلوم شد عبارت چی شد؟ عبارت که ما از مرحوم کشی خوندیم اصلا عبارت راجب در روایت نیست اجمع اطلعصابه علا تصدیح مایسه و هنها و تصدیقه و اقر رو لهم بلفقه اقر رو لهم بلفقه ایشون مرحوم صاحب و و خدای خوی همین هم احتمال دادن ازده هم می احتمال دادن سال و سال عباسه سال و سال روشن شد در این صفحه دیمیست و بیست و چار وقت دکر دا نحو دالک بله و معبلغومه از شیخ و کتاب الوده و جماع اصل من در متقدمین و متاخرین این عبارت شیخ هم در عده کسی دیگه هم نداره فقط نجاشی در ترجمه ابن عبی عمر داره تو ترجمه صفان و هم نداره. نجاشی فقط و فقط در ترجمه نبی عمر و اون هر رو این نکته که کتابهاش رو تو زمین نف کرد و خواهرش، دخترش و مادرش چون ایش رو زندان کردن یک سال خورده زندان بود و که اصلا رو مثلا معرفی کنه از طرف بنی عباس و کتاب ها لرزه زمین بود لفت لرزه ندهن که مثلا خاکی آفی پش خورده بسا... سنگ ها واضح نیست لذای ایشون مرحوم نجاشی به روایات مرسل ابن عوی عمر عمل کرد این لاجبه پس این که ایشان میفرمایند فرماین مرحوم آقای شیخ و هر که این فسکت عبارات شیخ در عدن در میاد اول ایشون فرموده و جماع اطلاعون متقدمین و متاسکرین نه قبل از شیخ ما این عبارات نه بعد از شیخ بله بحث اجماع اصحاب اجماع رو برای اولین بار که بیاد دیگه در فرق ما منتطبق بشه در کتاب‌های مثل محقق آمده روشه تحقیق اونارو باز بکنه این کلمه اصحاب اجماع اگر در کتاب کشی حالا کشی میگه اوائل قرن 4 حدود زمان کلمیه شواهد اینطور نشون می‌ده ایشون اول قرن 4 این عبارت رو کشی گفته هیچ شواهدی در غرم پنج در کتاب نجاشی نیست حتی از این شاهدی هم در عبارت شیخ نیست مگر همین عبارت میازه تایبه و الا عبارتی که مشعر به اجماع باشه در کلمات بعد از کشی نیست بعدش هم فرض که مثل ابن ایدریس و دیگران که آمدن باز خبری نیست بله محقق گاهی و قد یک حدیث قبول میکنه میگه از اصحاب اجماع الذینه مثلا قال کشی اجماع الاصحاب على تسليمها اولا چون این اصطلاح است. از قرن هفتم در کلمات شیعه از هست. از قرن هفتم به بعد این مطلب شروع شد. لكن خود علما مثلا ایده رو توصيل بکنه به خاطر اینکه وجود اصحاب اجماع. نه اینم نمی بحث شروع شد اما این که جزو مسلمات اصحاب باشه ایشون که هم جماعت در متقدمی بل متأخرین و رکر و انه هم عجم و عمل به مراسیل ها اولا این هم روشن نیست قطعا روشن نیست اونی رو که مرحوم نجاشی در خصوص ابن نبی امیغه در مراسی شیخ هم سه نفر اصف مرده گفته بغیره من اصطفات الگینو ارخو حالا این ارخو اینطور یعنی معروفن این چیه هستن؟ عباره شیخ هم ابهام داره واضح نیست که نفرا ولذا ارز کردم که مثل مرحوم صاحب وسایل حملش کرده بر اصحاب اجماع و نتیجه این گرفته می کنین این طور می و یعنی ای ایزن جماعت من اصحاب اجماع لناهی که به حاضل اجماع شریف الناهی قد سبت مقلوب و سندو ولی روشن تو در شما شرحال اجمع قرینتن قطعیتن علا ثبوت کل حدیثن و واحو واحو من المذکوری مرسلن و مصندن این استظهار ایشان این از کردم روشن بشه انشاءالله برخون اولا ایشون مثلا در دومی اینطور داره تصمیت الفقه من اصحاب عبی عبدالله سرومی هم تصمیت الفقه من اصحاب عبی عبرانی اصلا بحث راوی مطرح نیست بعد این عبارت معروف اجمعتل اصابت و علا تصحیح مایسه ها انها اولا اون بحث اساسی سر کلمه مای موچوله تصحیح مایسه بعضی ها تصحیح مایسه رو برانه خبر گرفتن که ایشون هم بقید همین بکنه بعضی ها برانه فتوا گرفتن اصلا مورد خبر نیست فتواست یعنی اگر فتوا ثابت شدی اینا گفتن اون فتوا صحیحه و مراد از فتوا هم مطابقت با واقع نیست یعنی فتواش رو قواعد فقیه اون زمان رابی یعنی هم همون همون چرا در اون زمان راوی رو را غیر از ثقیر به اصطلاح خودشون واعی حتی این حدیث معروف خب در یک زیرش همین دیگه من حفظه علا امتی عربعین حدیثه یعنی تفایمونه برای فی دینه و دنیا مولا باشه نباشه بعصه با الله یوم القیامته فقیهم چون خود پیغمبر فرمود که نظر الله و امرن سمه مقالتی آها این وعی یعنی درک کردن رو منی فکر درسته یکی صنع است یکی وعا یکی روا، یکی وعا راوی کارش اینه که عبارت نقل میکرده وایی یا فقیه کسی بوده او که اون زرافت ها رو منتفض میشده به و همون این حدیث معروفیه شاید بشه تقریبا نزدیک دعوی توات و هم بشه معنیش که مسلم از فامیل ما هم داریم در اجتر وزاق برموله اهل سنت ه به نظام ارز کردم یک کتابی که اخیران چاپ شده چهل سالی چهل سالی چاف شده به عنوان اولین کتاب در علوم الحدیث بین اهل سنت ما رام اول حسن رام اسم کتاب اینه المحدسل فاصل بلی کتاب آدم فادل نمشن المحدسل فاصل بین الراوی و الوایی المحدسل فاصل محدسل فاصل حد نه المحدث الفاصل بین راوی و الوایی چاک شده من دارم تا این تا رویی خیلی جز کتابه اولیه از خیلی ماده علمی دیاد نیست بیشتر نقل حدیث الان اول حسن رام هرموزی. یعنی راوی و با وایی وایی مادشون فقیهه چون خود پیغم فراب با هامل فرقه من ها افرامه بخی ما در میان این اصحاب ما مهم این بوده که ادهی از این اصحاب ما جز مجرد راوی ه ایشون هم همه می بگه من اینشالله اگر خدا من توفیر داده چون عده از این متهم به قیاسن اصلا متهم به مذاب فاصله بودن ایشون مخواد بگه نه به اتفاق اصحاب این هم افراد بزرگاری هستن فقیه هستن خود یونوس یکیشم یونس هم نزرحمن هست گفته شده بخیل افنا ها اولا سته یونوس هم نزرحمن خود اهلقون با یونوس فوق الاده بد بودن هم یونوس هم امینه که ایشون اسمش اینجا ده که ها اولا تمام عبارت صدرن زیرن ناظر به مقام فقاهت اصلا بخشی به روایت نداره و نا خوب به قطعه کنی به اینه که اینها فقهای های هستن دنبال قیاس و مذاهب فاسده نبودن اولا باید ثابت بشه که این فتوه رو یومس داده این یکی دو این مایسه یعنی اگر این فتوه ثابت شد این صحیحه نه صحیح به معنای به اسطلاح مطابق واقع یعنی صحیح مطابق قوائد علمی مطابق حجیت این براده اصلا ربطه حالا سال بس سال اینطور طور فهمیده عدسال سر بله بعد ایشون قرینتن قفییتن الان ثبوت کل حدیثه خب این خیلی مشکلی فهمیشان متاسبانه خیلی برپردن ثابت بشه به اجماع اصحاب تعبد میشه تعبد و حجیت نه ثبوت منسقت او ضعیف او مجهول اطلاق نست ولی اجماع کماترا خود اجماع لیلو بیست قابل تنستا که به اطلاقش نیست بله چرا اصلا اینا ناظر دیگه که اینا افقاهای بزرگواری هست نه اصلا ناظر به حدیث مرسلشونه نه حدیث مصندشونه این افقه های بزرگ چون از کردم ادهی از این مثلا زراره ازش مذاهب کلامی نرسو حتی در کتب مثل کتاب شهرستانی دیگران در علم ف... ملد و فرح مثلا مثلا زراریون المذاهب زراری از زراری یا یونسی مذاهب فاصله به خود یونس ابن عبدالرحمن رعی و قیاس نسبت داده شده پس این از هایش که نبا که اینا نبود بزرگ بزرگی خود ابرداللله نمودیرا آراء شاز داره که این عرض ارزش می‌کنه اینا می‌خواد بگن برتر از آراء شاز باشه، لکن فقیهه یعنی رو قباید رفت و رو مثال دادم مثل ما رو آی خدا یعنی سیصد و مورد چه مورد تو فتویشان شازه مقاله‌های بنوشیدیم اینطور حساب کردن یکی از نجربیات ما می‌کنم حساب نکرده. خب در قبایتیشان به سیمی صلح چرا اعتماد کن رو روایات معیم طریقه معیم همون طریقه یکی در فقه شیعه بوده نه اینکه این مثلا کاری شده که از فقه شیعه خارج شده باشه مراد اینها اینه و لذا داره منقادو لهم و اقر رو لهم به و غال و افقه آقا سته خودا صدرن تمام شواهدش ناظر به فقاه و جلالتشن اینها در مقام افتاء اصلا رفتی به حدیث نداره خیلی و برد نقل از شیخ و غیر وعد اجماع عدد عمل به روایات جمعی الموجوده في الكتب المعتمده جمعی نه یعنی شیخ مخصده بگه این کتب در روایات المعتمده قابل اعتماد لگه شیخ تا آرز فرض کرده به نشون و سریکرده توضیح بده بله بعد رویشون میگه قرائن غیر اجماع که بعد میگیم و غذر کرد شرفی اول فهرز انه کسیرم من مصنفین و اصحاب الاصول کانوین تهلونم مزاره و الفاسده به امکانت کتبه هم معتمده اینشالله این مطلب رو بعد من توضیح بهتری میدم اینطور نیست که ایشون فهمیدن مطلب چیز دیگر نیست بعد ایشون دنبال همین قرار نعامه و نه از کلوهونا نبزتن یستیره من کتب المعتمده و اهلها لعن وجود کل واحدن منهم هم فی سنده این قرین از اون نه این قرینه آمه اینه ما بخواهیم بگیم که این مطلبیشان درست نیست وجود زراری در یک سند معناه نیست که اون سنده تمامه خود ثابت نیست چه برسه به ثبوتش فعن من نقره اما من کتابی و هم معتمد ام من کتاب آخر معتمد و طریق تریقون لازواز داره کرد کتاب به اجازه با اولا اول به نه اینطور نیست ممکن است فرد نعر کرده که به نظر ما ضعیفه ایشون نظر استقله بوده بعدم تاریخ تا خود زراره باید بررسی بشه اینی که وجود اینها در یک سر کافی باشه و ایشان اسم می‌بره بالا شیف حالا ایشون اسماء رو اسم میبره من این مقدارم سریع میخونم میخوام بیاروا واژه بحث رجالی و تاریخی بشه یکی ابراهیم اسحاق احمری ناهوندیه ایشون ناهوندی جانشین کان ضعیفان في حديثه متهم في دينه وسند نف كتبا جماع قريبا من الصداد از این عباراتش روایتشه قریبه از صداده پس قابل قبوله و صادقانه الان مشهور رجالی ها دربار نه ها رو ضعیف میدونن مثل رو های خوبی اصلا اعتماد براش نمی کنم بگه ایشون با, با اینکه خودی ضعیفه و اتهام قلوب داره موجود در کتابش غالباً از مسادری گرفته که قابل مادنه این من منسلات به این معناست این همون اصطلاحی است که من اسمش گذاشتم اصطلاح فهرستی این تحلیل فهرستی است. بشه میشون فلان این آدم خبیصی آدم مثلا کذاییه خیلی اتحان به اسلام میزن اما فران کتابش که نوشته نقله هاش درسته از کافی نقل که درسته اصلا این <تصفيق> که شدید درگی میاد درگی بسلا منسلات نه این معنات که هر به توش عباد حساب نهایی ما قبول بکنیم که ایشون فرموده بعد اسحاق ابن عمار ثاباتی کان قطعیان یعنی الا النحوسه قشون و اصل او اون علی دیگه الان تقریبا ثابت شده که اسحاق ابن عمار ثاباتی که ایشون اسمش آورده گفته اصلا داره این شد گفته و اصلش هم معتمدون علی اینا همه وهمون سیون وهم. اصلا اسحاق ابن وجود خارجی نداره که اصلی داشته باشه انشالله بحثی در جای خودش اسحاق ابن عمار حساباتی اشتباهی که از شیخ صادر شده اصلا چنین شخصی در کار شما نداریم شخصی نام حساب ابن عمار صاباتی اسحاق ابن عمار کوفی داریم صاباتی اسم نیست برای اونم از اجللات فتحی هم نیست این عباراتی که می‌شینن جلوی شیخ نه اصلا واقعا بحث منطقی بحث منطقی و هم وجودش موهومه هم فتحی بودنش که برای امانه موسی صاباتی بله اینو حساب ابن عمار اون عمار موسی صاباتی داری در دربار نداریم حالا یه بحث طولانی داره اینا این از بحثی که در این تاریخ تقریبا هزار ساله شیعه خیلی به لحاظ پس پیش نوشته اینطور دیگه خودشه احمد بن ابراهیم عمیر امير اشعریاتن در سه ثقه حسن و تصنیف سفیع و حدیث ما از این آقایی که ایشون اسمشو برد در اینجا یک دانه در کتب اربعه نداره ایشون اصلا تاریخ نگاره ایشون والله بیس ابو احمد ابن ابي قري كلا من علما خارجه اخبار سهيميري و فره و تاريخ و شايد ابي يحيى تاریخ نوشته ما اصلا توی تو شيعه کسی بوده که تاریخ نوشته خوبه حتی این رفیق به عالما ظاهرا آز... مح... من خود غلط کرده به نظر مرحوم حاج شيخ هو توجه نفرزند که این رفیق به عالما نداره درست نجاشي هم گفته فقيه شيخ نگفته علي حسن ابن سعيد چاره كار خاطر الان معروف به كتب حسين سعيد بعد بلايشوار کتب سلاسی نیشان جزو کتب معروف است، اما از هر این حجور اما خود ساحب توجه نمی کن ما الان ده ها رواید هست که تا حسین ساید که منفرد شیخه نه صدوق برو نه هرکن نه کنه اینی اعراض کردن زباید گاهی شیخ نمیکنه از میکنه حسین ساید بعد توجیح میکنه یعنی شیخ همون قبول کرده یعنی مرمو ساحب چون اینا محدثین از بس که به ه تحقیق حدیثی ندارند علی حسن محمد ابن سماعه واقعی المذهب الا النحو ایشون نه فقط از, از معاندین در وقته انصافا اگر زبان ما بودش قله ما از جزء اخیر ارکان بهان در وقت کسانی که به حضرت رضا به میکردن هی در دو قسم اسمشون ملایم بودن بود از حضرت خوبیه فقیه فقيه بزرگوار اشتباه کرد چون پدرش کرده بود اشتباه کرد یک عدد نه الفاظ زشت برای حضرت اعظم کار میبره نه از اونها <تصح> <تصح> <تصح> و از کردیم بیشترین قسمت آثار حسن محمد ازن در درجه اول تسبب کلی بمارسیده و شاگرد این شخص حمید ابن زیاد آثار حمید ابن زیاد و حسن محمد در کتاب صدوق فوق العاده کنده یه دو تا اسوسییتد تو سی هستند مستقیما از حسن ما من نمیخوام میخوام خب بگم اینا اینطور که اینجا نوشتن درسته چگیل و تسامیر خود مرحوم نجاشی که کان یوان دفل فلر حتی نه میگه یه قصه ای که ایده از اصحاب در کوفه بود یه سنی آمد گفت که ما یه کلامتی از امام هادی اومد از کی گفت حسن ما محمد سو ناراحت چون گفت اینا امام نیستن اینا بدل نشده حافظه یعنی کرامت اول مثلا امام مثلا یارو مثلا بعد سه روز میمیره و مرده دستور میگه چی چیز نیست مقامات هیچ چیز نمیخواد این هندیان پیش یارو میخوان درست درجه اجازه ی مقامات ها. این اینقدر معانده در وقت میگه ناراحت شد که هیچ چیزیشون نسبت میدیم به علیه محسن حفص بن قیاس القاضی امیر مذهب لا هو کتاب المعتمدون درسته کتاب اثر حافظ حدیث داشته طلحه بن زید دو سال ما توضیح دادیم کتاب المعتمدو علی ابن احمد کوفی صحابی کتاب الاسطباسه خیلی نجاشی را جبیشون بد نوشته علی ابن حسن تاتوری ایشون هم ایشون نوشته کان واقعی یا شدید الاناکسی مذهبی هی سن نفل بلعصبی یا تعالی من خالف امان الامامیه از کلم آثار تاتوری زیاد پیش ما نیست اونان پیش شک خیلی چیز کمی از ایشون در کافی آمده و الاز پیش ما نیست هستن علی ابن حاتم قذبینی که ایشون اسم برده که کتبون کسیره جیده خب شوفی برمیدن از این جیده کتب ایشان ایشون کان سه قطم فی نفسه لانه او یربیان زعفا کسیره ایشون یربیان زعفاست خود علی ابن حاتم و امار ابن موسای ساباتی کان فتحی هست کتابون کبیر جیدون معتمدون شاید هشتا درصد الان از بوایات امار ساباتی اگه شما جواهر رو از این استگیری بگه 80 درصدش لااقل در رد میکنه میگه فیه روايات عمار عن معروف به کشف شذوز روایات عبیدالله حلبی رو نقد کرده خوب حرفش صافون عرق راجع به این هم صحبت شذوز در روایت هر کاری که اون نسبت نیست نسبت شذوز در روایات عمار صاباتی خیلی بالاست صل و صلی الله علی محمد موصول هر کی شده اون ذخیالتیاتش راพูด تو تو میگه